بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الجهاد كتاب الجهاد جهاد في سبيل الله وشرائط وجوب الجهاد سبع خصال شرطها واجب شدن الجهاد هفتا مباشا هفت شساسا يك الإسلام أولي شرطش شينك یاد سر شخص واجب باشه اسلام هست دو والبلوغو بالغ بودن شخص باید بالغ باشه شخص جهادگر مجاهد بالغ باشه سه و و عاقل باشه چهار و و آزاده باشه برده نباشه پنج و ذکوریتو مرد باشد و زن نباشد. شیش و سالم باشد. مریض بیمار نباشد. هفت و على القتال و توانایی بر جنگ داشته باشد. اینا بسید شرایط وجوب جهاد بودن برای اون شرایط اون شخص جنگ وجوب و اون مجاهد بودن. كتاب دي خيلي مختصر بحس ميكو ومن أصير من الكفار فعلا ضربين وهركسي أسير شد أس كافران بس إنا بردو كروحان وصراي كافر بردو كروحان يك برب يكون رقيقا بنفس السبي وهم السبيان والنساء گروهی که برده می‌گردند با اسیر شدند. اسیر شدن که خلاص برده می‌گردند. و همو سبیان و نساء و اینها بچه‌ها و زنان هستند. دو و ضرب لا بين نفس السبي و هم الرجال البالغون نودوم اون اسیرانی هستند که با خود اسیر شدن برده نمیگردند و اونها مردان بالغ می میباشند والامام مخیر فیهم بین اربع اشیاء امام در رابطه با این گروه دوم یعنی مردان بالغ بین چهار کار چهار گزینه اختیار داده میشه یعنی شریعت به او اختیار داده امام حکومت مسلمین یک القتل بین کشتن اینها دو والاسترقاق برده کردنشون سه والمنو بدون هیچی آزاد کردنشون چهار والفدیه تو بالمالی او بالرجالی یا اینکه نه اینا رو آزاد کند فدیه بگیره یا مال بگیره یا در مقابل مردانی که از حکومت اسلام اسیر هستند یفعالو من ذالی ما فیه المصلحتو از این چارتو گزینه همونی که مصلحت مصالحه اسلام درش بود به نفع اسلام بود اونو انجام میده میگه انجام میده از بیان این چند گزینه همانی را که درش مصلحت است بله و من اسلم قبل الاصری و هر کسی که اسلام آورد قبل از اسیر شدن و هر کسی که اسلام آورد قبل از اسیر شدن احرز ماله و دمه و صغار اولاده محفوظ میکند مالش را و خون را و بچه های کوچکش را کسی قبل از اسارت اسلام آورد خلاص دیگه محفوظ میشه خون خودش مالش بچه های کوچکش این بچه های کوچک تا پدرند اما اگر نه بعد از اصارت این ماناورد فقط از این که کشته بشه خودشون نجات میده. یعنی کشته نمیشه. دیگه گزینه کشته شدن دیگه برای این شخص وجود نداره. دیگه امام نمیتونه اینو بکشه. منطقه اختیار داره در اون سه گزینه دیگر یعنی برده کردن و همینجوری آزاد کردن و فیدیه گرفتن. ومالش مالش هم معسوم نميشه اولاد كوچه كشم ندري جوز غنائم حساب ميشه مثلا بعدي و يحكم الاسلامي عنده وجود ثلاثة اسباب حكم کرده ميشه براي بچه بمسلمان بودنش هنگام وجود س سبب سبب وجود داشت حکم میشه که این بچه مسلمانه یک ان یسلم احد ابویه ابوه یکی از دو پدر یا مادرش مسلمان باشد دو ان یسبیه و مسلمون منفردن ان ابوه اسیر کند اون بچه را مسلمانی همراه پدر و مادرش نباشد تنهایی اسیر شد همراه پدر و مادر نبود حکم به اسلامش داده میشه بچه را س او یوجدو لقیتن فی دار الاسلام چیده بشه پیدا بشه در دار الاسلام اینجا هم حکم کرده میشه که این بچه مسلمانه او طبقه بچه مسلمان باش برخور میشه فصلون فصل بعدی در رابطه با چه از السلب و الغنیمه فصل بعدی در رابطه با سلب هست سلب وسایل اون مقتول رو میگن کش اونی که کافری که کش نمیشه. لباسش زیورالاتی که برش هست اون خرجی هایی که همراهش هست اون سواریش اسلحه های جنگش اینا سلبش حساب میشد. اینا حکمشون چی هست؟ غنیمه غنیمت حک میست وسائللی که در جنگ در جنگیر مسلمانان میاد اینا رو حکمشون در این فاصل توضیح میده و من قطلا قتیلا هر کس شخصی را کشت یعنی در جنگ او سلبهو سلبش او و سائلش به اون داده میشند. و تو بعد ذلك ال خمسه اخماص، و تقسیم میشه غنیمت بعد از اون به پنج شکل مصابی. فیعطا الرباعت و لمن شهد الوقعت. چار این غنیمت برای افرادی که در جنگ حاضر بودند. تقسیم میشه. به این شکل که و للفارسی ثلاثت و شخصی که با خودش هم همراه داشته در اون دوران علایه. ما توزیین نمیدیم فقط به برابر حل میکنیم دیگه و داده میشه اونی که با خودش اسب همراه داشته سه سهم دو سهم برای اسبش و یک سهم برای خودش ولی راجلی سهمون و اونی که پیاده بوده یا نه وسیله داشته و وسیلهش اسب نبوده در آن زمان خرم فرزند به همراه داشته این یک سهم داره پس 4 پنجم غنیمت بین جنگجویان بین اونایی که همراه بودن در جنگ تقسیم میشه اونی که با خود اسب همراه داشته اسب سوار بوده سه سهم داره او پیاده شیک ولا یسهمو الا لمن استکملت فی خمس شرائط و سهم داده نمیشه در میان این افراد حاضر مگر برای کسی که پنج شرط داشته باشه هر پنج شرطش موجود باشد. یک الاسلامو مسلمان باشد دو والبلوغو بالغ باشد سه ول عقلو عقل داشته باشد عاقل باشد چهار والحریتو آزاده باشد پنج ول ذکوریتو مرد باشد این پنج شرطو داشته باشد تا سهم بش بدن در جنگ نامو سهمی که خوندیم فان این اختل من اگر شرط من دلک اگر شرطی از این پنجگانه نبود طرف مسلمان نبود زمی اومده بود برای جنگ یا بچه بود یا عاقل نبود یا برده بود یا زن بود خلاصه یکی از این شرط رو که نداشت خله لهو ولم یسهم بله اینجا میگه رودخه لهو ولم یسهم له اینجا دیگه یه چیزی بهش میدند اما سهم بهش نمیدند خب این ردخ که به او میدند چقدر هست؟ ببینید ردخ یعنی چیزی که از یک سهمی که به پیاده داده میشه کمتر باشه فرزن اندازه سهمی که به جنگ جومیدند صد دیناره این ردخی که به این فرد میدن بعد از 100 دینار کمتر باشه نود مثلا دینار باشه مشکلی نداره. پس میاند رو حساب میزنند هر شخصی پیادهی 100 دینار گیرش میاد خلاص اگر کسی این رو نداشت مسلمان نبود بالغ نبود نبود آزاده نبود مرد نبود بهش میدن دا ولی سهم بهش نمیدن یعنی کمتر از سهم چیزی چیزی میدن اون چیز کمتر از سهم باشه فرزن پنجا دینار میدن. امام هر تشخیص دهید بله پس اگر با مسلمانان شرکت کرده بود کافری یا بچه ای یا دیوانه ای یا غلامی یا زنی زمانی که در معرکه حاضر بود یه چیزی که کمتر از سهم باشه بشمیدند ويقسم له الخمس على خمسه اسهم. خب ما گفتیم غنیمت به پنج جای مساوی تقسیم میشه. یک جاشو میگذارند یک بغل و یک گوشه پنج جاشو، چهار به جنجویان حاضر میدن اون یک سهم شو چیکار میکنند؟ له الخمس على خمسه اسهم. میگه اون خمس یک پنجم غنیمت خودش دوباره به پنج سهم دیگر تقسیم میشه. غنیمت رو به پنجاه تبدیل میکنن چارجاش رو میدن به حاضران اون یک جای دیگرش رو دوباره به پنج تقسیم میکنن و یقسم الله الخمس و تقسیم میشه یک پنجمه غنیمت به پنج سهم یک سهم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یک سهم برای رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم البته این در حال حیاتش. یک سهم بعده المصالح. بعد از پیامبر صلی الله علیه وسلم این سهم برای پیغمبر هست منتها برای مساله حکومت اسلام مصرف میشه مانند فرزند آبادانی مساجد و غیره دو پس برای مسلحت های عمومی. دو سهم سهم دیگه به نزدیکان رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم داده میشه که بنو و هم بنو و بنو المطلب که بنو به و بنو مطلبی باشد فرقی نمیکنه چی غنی چی فقیر منتها مردانشون دو برابر زنانشون داده میشه پس سهم اول به پیامبر بعد توضیح دادیم در این روزگاری که داده بشه سهم دوم به زویل قربای پیامبر سهم سوم و سهم لیتاما برای یتیمان یتیمون یعنی همچانت که پدر نداره و هنوز بالغ نیست شهر و سهم للمساكين سهم بعدی مسکینان داده میشه به محتاجها، ها فقیر هم شاملشون میشه پنج و سهم السبیل سهم دیگر برای مسافر این در بحث زکات داد شد ابن السبیل یامن ابن طریق فصل قسمت الفئی فصل بعدی ما در این باب جهاد در رابطه با فئی هست قسمت الفئی تقسیم فی مالی است که از کفار بدون جنگ بدست میاد بدون که برند جنگی بکنن فه تر تقسیم میشه؟ و یقسم مال الفه على خمس فراق میگه مال فه اون مال که بدون درگینی بدون زحمت بدون این که اسری به گیر مسلمان اومده میگه تقسیم میشه به پنج قسمت میشه این هم یصرف خموسوه علاما یصرفو عليهم خمس یک پنجم فی مصرف میشه بر همون گروه هایی که یک پنجم غنیمت بینشون تقسیم میشد یعنی پیامبر صلی الله علیه و بعد از اون برای مصالح دو برای ذوی القربای پیامبر بنو هاشم و بنو المطلب سه برای یتیمان چهار برای مساکین پنج برای ابنای سبیل یک پنجم فی برایمونا تقسیم میشه و یعطی و اخماسه للمقاتله اما یک پنجم دیگرش داده میشه برای جنگجویان برای مجاهدین این مجاهدینی که لیستشون نزد دولت هست و فی مصالح المسلمین و در مسلحت مسلمین هم خرج میشه اون چار دیگر مال از جمله اصلاح اون زمان فرزن قلعه ها این روزا مثلا پاسگاه ها مرزها خریدن صلاح و این مسائل فصل احکام الجزیتی احکام الجزیه اون کفاری که در مقابل اهد و پیمان زیر حکومت اسلام زندگی میکنند قرارداد میبندند خب الان این فصل برای در رابطه با احکام جزیه است و شرایط وجوب الجزیتی خمس خصاله شرط های واجب بودن مال جزیه 5 تا می باشند همین شرط البته شرط هستن برای صحیح بودن قرارداد جزیه برای اینکه یکی بیاد قرارداد جزیه ببنده این پنشت شرط رو باید داشته باشه یک البلوخ بالغ بودن دو والعقل آقل بودن سوالحریه آزاده بودن چار و ذکوریه مرد بودن یعنی واجب نیست جزیه بر بچه و بر دیوانه و عقد با اینها عقد جزیه با اینها هم صحیح نیست همچنین واجب نیست جزیه بر غلام و صحیح نیست عقد جزیه با این جزیه واجب نیست بر زن و بسن عقد جزیه با این هم صحیح نیست پنج و ان یکون من اهل کتابی او من, من له شبهت و کتابید. پنجمین شرط این است که اون کسی که قرارداد جزیه جیزیه میبنده جیزیه بپردازه صحیح است که به بپردازه جیزیه برش واجب میشه اینه که از اهل کتاب یعنی یهود و نصارا باشه یا از اون کسانی باشد که شبیه به اهل کتابند مجوس چون ادعای کتاب دارند زرتشتیان، بله بر این اساس اگر از اهل کتاب نبود یعنی یهود نصاره یا از گروهی که شبیه به اهل کتاب هستند یعنی مجوس جزی ازش پذیرفته نمیشه و اسلام باد بیاره و اقل خب حالا که گفت چه کسانی جزیه بدند و چه شرایطی عقد جزیه درست هست و جزیه برش واجبه حالا میگه که این جزیه چقدر باشه و اقلل جزیه البته با همین توضیح ولی اینکه با ما روز توضیحش ندادیم واضح میشه که جزیه که این همه جوالان میدن بر علیهش متاسفانه دیدیم که بر اون گروه های ضعیف جامعه اصلا نمی اومد بالغ بودن شرط بود، عاقل بودن شرط بود، آزاده بودن شرط بود، مرد بودن شرط بود. جلوتر هم باز هم هم میگه خوب و اقل الجزیتی دینارون فی کل هل کمترین جزیه یک دینار هست در تمام سال یک دینار یعنی چار گرم و دویست توسی میلی گرم این واجبه و یقخده من المتوسط دینارانی و مستحب است که امام از شخصی که وضعیت بهتری داره متوسطی داره دو دینار بگیره البته این مستحب هست و من الموسری اربعت دنانیر و از شخص غنی چهار تا دینار بگیره هر دینار گفتیم برابر و 4 گرم و دویست و میلی گرم مستحب است که از متوسط دو دینار و از پولدار چار دینار بگیره و ان یشتریت علیهم اضیافه تفضلا ان مقدار الجزیه همچنین جائزه و بلکه مستحبه که شرط بگذاره برین این افراد البته اونایی که فقیر نیستند اونایی که فقیر نیستن شرط بگذار امام از ضیافته مهمان نوازی کردنشون رو. آقا شما اینجا تو حکومت اسلام زندگی کنید. مسلمانی که از اونجا رد میشه اون قدیما که خوب ورفا عوض اتیلی نبود فلانی نبود فلانی نبود. اون مسلمان رو تا روز یا کمترش مهمانی کنید. بگی واجیو زیاشترت علیهم از ضیافته. فضلاً مقدار الجزیه. جایز است و مستحب است بلکه شرط بگذارد برانان البته غیر فقیرانشان که مهمانی کنند اون مسلمانی رو که از اونجا رد میشه اضافه از اون مقدار جزیه سی روز و کمتر بیشتر دیگه نه و یه تضمن اقدال جزیه تی اروعت میشه قرارداد جزیه چار چیست این چا مستلزم چهار چیز است قرار قرارداد یک ان یؤدوا الجزیه قرارداد که بستند این چهار چیز میطلبه یک جزیه رو آخر هر سال بپردازند دو ان تجری علیهم احکام الاسلامی احکام اسلام برشون جاری میشه البته اون احکامی که اعتقاد بشون دارن اگر چیزی از مسلمانان رو تلف کردند زامن هستن البته اگر مسلمان هم از اون چیزی تلف کرد زامن است به اون اعتقادی که دارن مؤاخذه میشن به اون چیزی که اعتقاد دارن حرام هست مؤاخذه میشن اهل کتاب مانند زنا و دزدی خودشون هم برای یعنی این حکم و قبول دارن به این مؤاخذه میشن و حد برشون اجرا میشه اما چیزی رو که انجام دادن که به حرمت اون اعتقادی نداشتن مانند شراب خوردن اینجا دیگه برشون حد جاری نمیشه پس جزیه رو بپردازن احکامات اسلام برشون جاری میشه که توزیعش دادیم به بشش چه شکل سوا الا یذکروا دین الاسلام الا خیرا دین اسلام را جز به خوبی یاد نکنند و چهار الا یفعلوا ما فیه ضرر علی المسلمین کاری رو که درون ضرری بر مسلمانان است انجام ندهند مانند جنگیدن با مسلمانان مانند پناه دادن جاسوسی که بر علیه مسلمانان جاسوسی میکند و یعرفون سل الغیاری و شد زنناری میگه و شناخته میشوند با پوشیدن غیار غیار یک روی لباس مخصوص مخصون روی این کتفشون. به غیر از اون رنگ لباس اصلی لباس با یک رنگ دیگه با نخ اونو روش میدوختن تا مشخص باشند اینها که اهل ذمی هستند پس میگه متمیز میشند یا شناخته میشن با پوشیدن غیار و شد الزنار و بستن زنار این هم نخ کلفتی بود که به وسط میبستند از بالای لباس و يمنعون من ركوب الخيل یک مسئله دیگه ای که در کتب فقهی قدیم آوردن همین هست که از سوار شدن اسب منع میشند شوند. زنار یا همین زنار که کتاب من کسره به ز اضافه البته شروع گفتند ز داره به ذمه به ضمه یک لنگ یا یک تنابیست بیست که از بالای لباس بر وسط کمرشون میوسند به خاطر جهت تشخیص زمیها میوسند